جان سه پنج جوی کوم رساله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين اللهم در اون پرودی که ظاهرا مخالف با بحث حاکیت علم, در علم که متولد از علم که ه هت کرد بلا پوسی اینها موی متذکر حلا سبیل منخر که دومی این بود که ما به عنوان یک قاعده و کبرای کلی بپذیریم که حکم ظاهری در حق دیگران واقعا در حق شخص دیگری میتونه نافذ باشه اینکه آیا میشه بپذیریم یا نمیشه که حکم ظاهری در حق دیگری واقعا در حق ما نافذ باشه مثل اینکه اصالت رو هر و اصالت رو که برای ما ثابت و مانت واقعا در حمد ما باشه و علم ما به نجاست یه شکه ما در نجاست لباس امام یا اهل امام و غیر موارد مانع حجیت خانه و فظاهی امام نماشه این وگه به صورت قاعده به پسیهیم خیلی از اشکالاتی که در بلیس فرواد پیش میاد مرتفع میشه ولی مصنف قائل به, به این نظری نیست این قابل نیست به اینکه که گفت در حق دیگری واقعا در حق ما و یا شخص سالسی بخواد نافذ باشه این رو نظریه رو آیا میشه تقریب کرد یا نمیشه تقریب کرد که اگر میشه تقریب کرد در خیلی از موارد احکامی که به این در تمام عباب معاملات و عبادت در همه این موارد مبترابهه که اگر احنامی منتبه به دو نفر و بیشتر باشه و اختلاف بین این تا باشه اجتمادن یا تبدیدن در این موارد آجه بکنه به کدومی که این دو میشه که اختلافیه اگر جلزه استراحت رو امام قائل نباشه ولی این مهموم قائل به وجود باشه ما میتونیم اختیار کنیم یا میتونیم یا حتی نسبت تهارت و نجاست گساله و افصالی نم در این موال خلافی بایدیش بار بکنیم بعضی از فرو آتش در وقته حتما ملاحظه کردیم قبلا و خیلی از هم مطرح نیست که اگر یک حکم اختلافی باشه بین دو نفر یا اجتهادن یا تقلیدن یعنی مرجه این دو نفر فرق داره در خطا یا اینکه خودشون اجتهادشون فرق داره این موارد اختلافی رو چطور میشه هندش کرد راهحلی داره یا راحتی نداره عقد به رو یه نفر این میدونه طرف مقابلهش متعامل دوم دقی نمیدونه یا موشینه نمیدونه یا موضعیت رو شرط میدونه یا عربیت رو شرط میدونه یا توالی رو شرط میدونه یا تقیمی می یا برقبول رو شرط میدونه این طرف اینا هیچکدوم رو شرط نمیدونه در این موارد میشه معامله کرد یا نمیشه بعضی از این فروئات رو در مکاسب دیدید این مکاسب شرح نمعه و در مکاسب شیخ انصاری و به طبعه حاشیه سید یزدی از, از فروحاتش مطرح در این موارد اختلافی پکم آیا به صحت میشه یا به بتلان که اهد لمتعاملین قاعده به اعتبار معظویت عربیت توالی تقمیمجا بر قبول و امثال اینهاست طرف دوم اینهارا شرح نمیدونه اونی که شرط نمیدونه خب صحیح ولی یعنی که شرط بدونه اگر آیت نشه این عرض صحیح یا صحیح نیست و همچنین در عبادات اگر بین امام و مأموم اختلاف باشه یا در مواردی که یک گفت نیم دو نفر باشه در این موارد در مهم زاهری که برای یکی ای ای از این دو ثابته در حرف دیگری نافذی یا نافذی و اگه بخواد نافذ باشه این میز چه قبناهی برمیگرده چطور میشه قاعده به نفوذ حکم ظاهری باشیم و رفع رفت حکم واقعی الان کلحال اختلافی، اختلافشم هم شدیده مصنب در هم دومی دو بوینا شده نایی هم در فوائد توضیحش داده و نوشتیم حتما ناوی دیدن حالا الان بایده چی باید بگیردن در بایده خلافیه بایده به سه حد بشیم و به بشیم. این رو گفتیم اصطلاح هم بهش جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری خب جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در دو علم مطرحه یعنی هم در اصول مطرحه هم در فق مطرحه اون مقوبهی که در علم اصول مطرحه که ملاحظه کردید تا الان به طبعه رسول پرتما زفر که اینها باقینا به اینکه امارات و اصول عملیه هیچ تنافی با احکام واقعی یه لوح محفوظ نداره اینها میشه جمع کرد یعنی چیزی ما ادای امارات اصوله اون چیزی که در واقع بوده و ما بهش علی نداریم و دست ما بوداهه و در لوح محفوظ یقینا هست بنابر قول به رفع تصویر به تمام اخسامش حتی تصویبی که شیخنصاری قاعده به عنوان مستهد سلوکیه که امامیه رافظه همه این تصویباته چه تصویب معتدی که معتبده و چه تصویب عشقلی که اصل، و چه تصویب دقیقی که مصنف و شیخنصاری قاعده بعد از رفظ همه این تصویب ها امامیه قاعدم به عدم تصویب هیچ نوع رو قبول نمیکن و قائلا به تریقیت امارات و اصول نه به سببیت و موضوعیت طبق نظریه امامیه جمع بین حکم واقعی که در لوح محوزه با احکام که به معنای عمش که معطای همه امارات و با اصول باشه چطور باید رو جمع کنیم هر فقیهی و هر اصولی یه دو میعرائی کرد که تا ده تا 15 تا نظریه است من نحص مجموع اختلافات اختلافات سبوتی به علمی محضه یعنی عهد نمیتونه بگه ما این روایات و امارات رو و معدائی اصول رو بذاریم کنار به خواهد ما نمیتونیم جمع کنیم بین احکام و و احکام ظاهریه این بحثای اختلافی در حد مباحث علمیه ولی بیشتر برایش برش مترتب نمیشه ولی اون راه فرق داره در جواب از شمهه ابن قبه شمهه منظور به ابن قبه اینها اومدن گفتن که قاید شدن به معده امارات اصول این نه تحلیل حرام نه تحلیم حلاله مشکل پیش نمیان و حلال محمد محمده حلال و ملای و حرامش هم همینطور اینها اینو نمیخواد بگه. ما میتونیم جمع کنیم بین احکام ظاهری و احکام واقعی و همه جمع کردن حالا متأخرین و معاصرین همشون یعنی چه طبقه اولای فقها، چه طبقه سانیه فقها و چه طبقه سالسه همه قاعدن همه قاعدن به اینکه با باید جمع میشه. شبه که از ده. طرف امثال ابن قبل شده اونها شبه هات در مقابل بدیدیاته بنابراین جمعه بین حکم واقعی و حکم ظاهری از نظر علم و اون خیلی سمره برشم ترده نیست که تا شریصد هر این از اصولیی صاحب مبنا و راحتی یه راهدی مثل آخوند خراسانی و ناهینی و آغازی ها و دیگران همه هر کدام یک راهحلی برای جمع بین احکام واقعی و احکام ارائه شده که اینها شبیه به بحثهای منبریه خیلی فایده نداره. شما ما نمیتونیم ان ما بیایم بگیم هغا جمع بین احکام واقعی وه احکام ظاهری نمیشه کرد چکار کنیم کل وساشیر بزنیم کنار نمیشه بنابراین به یک نحو ما قبول کنیم انها رو بحثها و تصورات و خیلی خیلاشهم تخیلات سمره برهش مترتب نمیشه انما نمر در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در ایتی فقه و ما مباحث اصولی رو چی میخواییم بگیم آخرش؟ یعنی مترقی ترین نظریه یه بین حکم واقعی و حکم ظاهری در اصول چه نتیزی میخواید برش مترقی بشه؟ حالا خیلی هم از دیگن طرف داران شهیصد به اینکه شهی بهترین نه هرمش کرده خاطر یه قائل به تظهمم حفسی شده و تظاهم حفسی، مافوق به تظهمم ملاکی آخندی و تظاهم امتصاالی نائیه ماافوق این و اون ازاصلا ذهنشون به این مقوله تظاهم حفظسی نمیرسه. اصالهایی میرن تقریبا میان حتی خیلی از و تشکیعات رو مبتنی بر نظریه، تضاهم حفظی میدونند بنابراین شئیس هد قاعده به این نکته که تنها راه جمع بین این حکم واقعی و حکم ظاهری نظریه تضاهم و این نظریه تضاهم حفظی قیل از تضاهم ملاکی و تظاهم امتصالیه و همین اینها در جزبه های سال نوشتیم در افرامش بحث شده می بگیم که اینها ها همشون، حتی تضاهم حفظی اولا نمی قوی از تظاهم ملاکی باشه یا تضاهم اتصالی که اونها دارم میگن، اگه زیبتر از اونها نباشه قویتر نیست موضوع برای که راه برای جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی در این ته فکر نمیشه. اون راه حل هایی که برای احکام ظاهری ارائه شده اونها در. علم نوصوله یعنی بحثای علمی صرف که چطور میشه جمع کرد اینها ولی اون چیزی که در فقهش مبتلا هستیم و نیاز به جمع داره اینه که احکام واقعی با احکام ظاهری در هیته یه فقه چطور جمع بشه ایمان قائل به عدم لزوم جلسی استراحته ما قائل به لزوم شیم اون قاعده به عدم جواز شهادت ثالث است ما قاعده به وجود بشیم و اختلافاتی هست اجتهادن یا تبلید در این موارد با ایچه کار بکنیم کنو بشه بگیم. ما به این امام این طوری اختلا بکنیم اختلا نکنیم چون نه با اون از این به فرق نداره فرق نتونه سر کنه اون این چیز دیگه دارن میگن در مقوله خیلی کلی دارن میگن که امارات اصول عملیه بنابرای مثلک امامیه سر از تصویر در نمیاره و هیچ اشکالی نداره ما باید به اینها عمل بکنیم و لوه محفوظ به جای خودش و در جای خودش محفوظه اونا اونو مخوان یعنی کلیت به تشکیری مخوان حلش کنن ولی در فروعات بیادینا رو بخواد حل کنه مثلا که راضی به فقه و فروالات فقه نمی‌ندند خب اینجا تفاوتش ماکسیمم است مستند مستربه. مستربه ما نمی‌دونه دو نفر میخوام با هم معامله بکنن یکی قاعده به اعتبار عربیتیه یکی نیست یکی قاعده به اعتبار ماذنیتیه یکی نیست یکی قاعده به اعتبار تقدیمیجا به یکی نیست در این موارد مشکل بکنیم یعنی اصلا شما تو برخورد میشه که معلوم نبود که این فروالات برعکسش رو مسئله میکنه نه دیگه اصلا مفتح نشاره. یعنی جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در این تحفیق اصلا مفتح نیست این آره اینو باید ما اینطوری بحث ترک کنیم که ما این فروات که در فکر داریم چطوری حلش کنیم و یه شبههی بوده خیلی واقعی مثل شبههی نکنمونه چه درستی به داره خیلی از این وقتیره ما بیان تصور کنیم یه دو خالقه من جمیز جهات رو تصویه ها خارش تصویه کردیم که چی میشه خود اونها مقاعد نیستن شبه که صحبه بردیم کرده بعدا به ابن کمونه نسبت میدن حالا این شبه ای ابن قبع هم همینطور که بعدا مباحث زن که بخوایم وارد بشیم در اول مباحث زمن رسائل هم میاد این هم بخواییم یه نحی حلش کنن ولی آخرش میخواییم که چه فایده برش مترتب میشه فایده برش نیست. چون ما باید این امارات رو سوز همه پذیرفتن همه مفتی ها همه اعلام از امامیه اینا رو پذیرفتن تبقیه اینا فتوه میدن دارن عمل میکنن ما بیان بگیم روح محفوظ روح محفوظ رو و با خایل شدن به تخته میگن اون در مقام خودش محفوظه و احکام ظاهی هم در مقام ظاهر محفوظه لذا بحث های ایزا پیش میاد که مویزی میشه این احکام ظاهری از احکام واقعیه در موارد تبدل رعی مستهدین در موارد تغییر مرجع تغییر برای انسان در موارد کشف خلاف در ارکان غیر ارکان و امسالین ها اختلافات خیلی خیلی زیادی که در فروعات فقی و ملاحظه کردید تا میخوام بگم اون جمعه بین حکم ظاهری و حکم واقعی که در اصول مطرحه اون منتج هیچ سمرهی ای در ایده فقه نیست فقه فروعاتش هم اینطور باز مونده ما الان در موارد اختلاف بین امام و معمون چی بگیم؟ امام قائبه به مانعیت فلان نجس هست یا نیست؟ ما برخلاف جماعت ما میشه نماز میشه نمیشه چی بگیم در این موارد ما بگیم از همه افرادی که بخون جماعت بخونن، از همه بپرسیم که نظرشون چیه بعد با هم نماز بکنیم در این موارد چی باید بکنیم مونده یعنی نمیشه جمعش کرد. حالا به بعضی از مثال بس اعتمام لطال زدن و اونم در موارد که در کار باشه و حدث معلوم به اجمال بین دو طرف باشه مثال زدن و خیلی در نتذیرفتن بعضیان پذیرفتن ولی در قرآت نزیرین چیکار بکنیم؟ چی بگیم؟ در موارد اختلافی چه از نظر اشتهاد چه از نظر تبلیم؟ چی بگیم؟ حکم به صحت بشه یا حکمه بطلان بشه اصلا استفسار بکنیم در این موارد بدونیم امام آله به چیه؟ بعد بیارم بهش خدا بکنیم یا نه اینا هیچ خوزومی نداره یکی از مباحث مهم فقه که در این موارد چی باید بگم. لذا نیاز داره به تعریف یکی از تعریف ها برای حکم واقعی و حکم ظاهری یکی از اون تعریفی که در این موصول براش مطرحه حکم واقعی و حکم ظاهری در اینجای فقه یه تفسیر فقهی داره، همون یه در اصول یک تفسیر اصولی داره در اصول یه تفسیر اصولی براش هست که خوندید دو تا تفسیر مظفر براش آوردن ذکر کرد. ولی در همین فقه یه تفسیر دومی داره که ذکر نشده و خیلی محلیه حکم ظاهری در فقه چی میگن حکم واقعی به چی میگن تفسیرش در همین فقهی منوط به موضوعشه یعنی خیلی خیلی خلاصه بخوایم بگیم حکمی که موضوعش متغیر باشه از نظر فقهی بهش میگن حکم ظاهری و هر حکمی که موضوعش ثابت باشه بهش میگن حکم واقعی نه همش همشن. اگه متغیر باشه میگن حکم ظاهری اگه غیر متغیر باشه میشه واقعی حالا در موارد اختلاف اختلاف بین دو نفر در یک حکمی که مبتلا به هر دو باشه چه در عبادات چه در معاملات ظاهرا باید چی بگیم؟ در موارد احکام ظاهریه موضوعش متقیره لذا اختلاف موضوع نیست اختلاف مضر نیست یکی عربیت رو شرط میدونه یکی شرط نمیدونه یکی ماذریت رو شرط میدونه یکی شرط نمیدونه یکی توالی رو شرط میدونه یکی شرط نمیدونه لذا در این موارد و امثال اینها در تمام این موارد قائم میشیم به اصالت و سهر این اصالت و غیر از اون اصالت و که شنیدید و خوندید در آخر رساعدم میان که اصالت و در فعل قیل فقط کسی یه کاری انجام داده ما نمیدونیم بر وچه بوده یا بر وچه باطلش بوده هم میشه بر وچه سهیش یه شخص ذبح کرده گوزخندی را نمیدونیم صحیح زبش کرده یا نه هم میشه بر وچه دیگه نمیپرسیم شما ما بلد اینو زبش بکنی یا او داجر رو تشخیص میدی تشخیص نمیدی این هم نیست ما از بستاخ بپرسیم خودش میدونه فعل فعل حمله بر وجه صحیحش میشه اونه میگن اصالت و سهر که خوندید تا الان با این قاعده رو خوندید حمل فعل مسلم یا فعل مسلم ها. بر وجه صحیحش که مفید ما باشه ولی این اصالت و سهر از آن اصالت و سهر این اصالت و خصوص موارد شباهات مقروم به این که در مواردی ما اختلاف داریم با دیگری حکم بطلان بکنیم یا حکم به صحت بکنیم امام نمی‌دونه لباسش نجسه ولی من دارم می‌بینم نجاست لباسش رو احتدا بکنم یا احتدا نکنم یعنی از موارد شش بالاتره موارد علم رو حتی می‌گیره من یقین دارم این جلس استراحت رو دایرت نمیکنم یقین دارم که قائل نیست و عملام رعایت نمیکنه یقین داریم به اینکه اعتقاد به شهادت سالثه نداره و نمیگه در اقامهم نمیگه در اذانم نمیگه در این موارد چکار میکنیم؟ در این موارد اسالة الصحه جاریه به این معنا یعنی در شبهات مغرون به علم اجمال که اون عمل مشترک بین دو نفر از نظر شریع اختلاف حکم داره اجتهاداً یا تقلیداً حمله بر قول صحیحش میشه یعنی اگر امام قائل به صحت صحیحه ولو من قائل به حکمان باشه بنابراین لازم نیست قائل بشیم مثل سید یزدی به اینکه امام باید حتماً در استراحت رو رعایت کنه تا من بتونم بهش اقتدا کنم لازم نیست اعتقاد نداره عملاً اتیان نکنه اشکالی نداره لازم نیز حتما مثل ما عمل بکنه چون در عروه و سایر کتاب ها حتما ملاحظه کردید نوشتن که اگر اعتقادم نداره عملا اگه نکنه نمیشه بهشه خدا کرد اینه بعد از سجد دوم مستقیم پا میشه و جلسه استراحتی نداره نمیشه خدا کرد ولی این نظریه میشه در مواردی اختلاف باشه بین دو نفر در یک عمل مشترک در اطراف شبهه محصولی مرمون به علم اجمالی قول به صحت مقدم بر قول به قطلانه هیچ اشکالی نداره ولو رعایت نکنه وقت این آیا مطلقا اینطوره یا تفصیلی داره تفصیل درش هست بالاتر از موارد، موارد شبهه و علم اجمالی بالاتر از این همه موارد میگه چه شک باشه چه اجمالی باشه ولو علم تفسیری اصلا باشه همون گفتیم حالا در تعبیرات جزوه نمیشیم که اطراف شبهه محصوره یا مطلق اطراف ولو شبهه در کار نیست من علم دارم به اینکه امام مثلا رعایت نمی کن. امام مستریم بعد از تاجی دوم دو ها میشه ولی میشه خدا کنیم اشتباه نکرده چرا تفصیلش چیه تفصیل بین ارکان و غیر ارکان یعنی ما اگر اون شخص مقابل مخهده به ارکان باشه آره قوله به بطلان مقدم میشه ولی اگر مخهده به غیر ارکانه هیچه شامل لذا در نماز جماعت ما لازم نیست حتما لباس بقیه رو بدونم حتما پاکه یا اینا اتصال برقرار کردن یا نمیدونم صفحای جلو اینا رو بستن به ما رسید یا نرسیده اینا هیچ کدامش لازم نیست تنها چیزی که در جماعت معتبر خیلی شرطیت واقعی داره ادالت واقعی مامه بقیهش مهم نیست مردم دارن اختلا میکنن اقتدا نمیکنن لباسشون ووزوشون خیلی از این چیزا شبهه داره حتی علم به بطلانش داریم علم به بطلان بعضی از ووزوهایی که مردم دارن همون دارن اختیار میکنن با این همه موسیقه به اختیار نیست اشکال نداره لذا بین ارکان و غیر ارکان حالا ارکان در هر باب رو معلوم معلومه دیگه در نماز قاعده لاتواز ارکان رو مشخص کرد یعنی پنج چیز جز ارکان بقیه یه غیر یعنی اگر امام مخنده به رکوب آشاره نمیشه کرد ولی اگر مخنده به ذکر رکوبه اشکال اگر مخل به اشکال نداره، مخل به در فررااعتت اشکال نداره. مخل به جدتی استراحت اشکالی نداره. مخل به ریام بعد از رکوع اشکال نداره و امثال نه غیر ارکان اگه در ارکان باشه نمیشه ولی اگه در قید ارکانه ارکانبان نداره، اختلافم یا در مواد اختلاف اجاشتهادن یا تبلیدن، ون جهت صحتش مقدم میشه و جهت قطلانش و این به خاطر اینی که احکام گفتیم مجبولات شهری بر دو قسم بعضیت موارد موضوعات ثابت و محدد اینو قبلا هم گفته بودیم الانم هم تصویر کنیم برای این که هر روایتی و هر آهی که به ما میسه هم حکم داره هم موضوع داره مگه میشه یه چیزی از طرف اشاره ما برسه بگیم فقط حکمو گفته موضوع نگفته تو چیزی ما نگفتیم تو چیزی هم وجود نداره یقینا یعنی هر حکمی با موضوعش میاد اون تفسیری که قائل شدیم تفسیل در تهدید موضوعه بعضی از موارد موضوع محدد میشه مشخص میشه حدودش و سقورش بعضی از موارد نمیشه ملغی عرف میشه مثلا در وطن شار چیز خاصی نسبت به وطن نداره این در مشهور وطن اون چیزی که عرف بگه وطن خودش چیزی نگفتی یا من تشخیص بدم به اینجا وطنم یا من قصد کنم اینجا وطن من باشه ولی بعضی از موارد حدود و سغور داره مثلا در حیل حدودی داره سغوری داره از سه روز نباید کمتر باشه از ده روز نباید بیشتر در قصد اقامه اشتف ایام تهدید داره تمام این که وارد میشه از نظر شرعی اینا خب موضوع محددش شرعی دیگر کم هم نیست یعنی شما اگر وسایل رو ورق بزنید میبینید حداقل اقل سریحاً سی موردش یعنی سی درصد از احکام موضوعاتش محدده سریحاً حال اونا اگه تلویهن و با استنباط به درس میاد اونام اضافه میشه بی. اگر موضوع محدد باشه جز احکام ثابت حساب میشه لایت تقییره ولی اگر موضوع موکول به عرف به تشخیص مکلف، به علم مکلف و امثال اینها موضوع محدد نیست ست گرفی در آن موارد کافیه و امثال اینها لذا ما تهدید موضوع رو داریم میگیم نه اینکه اصل موضوع اصل موضوع من در نصوص اومده بدون موضوع هیچ حکمی بیان نمیشه تهدید موضوع غیر از وجود موضوع برای احکام در نصوص شدیه لذا اگر تهدید شده باشه موضوعاتی رو ما دیدیم تهدید شده اینها اشاره به اینه که حکمانصبه بر این موضوع بدون رساطت هیچگونه واسطه ای اروزیه. خود خب مال این واسطه ای اروزیه نداره اختلافی درش نیست و اختلاف هم پذیرفته نیست مثلا رکو از این نسیمه یه چیز محددیه شرفیت رکوع چود واقعیات در نمازه اگه اختلاف در رکوع باشه را نمیشه. نمیشه اگر اختلاف در قیل این باشه اشکالی نداره. در ارکان نمیشه ولی در قیل ارکان میشه حالا ارکان رو ما چطوری تشخیص بدیم؟ هر باب خودش ارکان خودش داره. ارکانی در حج هست ارکانی در حتی ذبه گوسفند کدومش رکنه کدومش قیل روکنه، تصمیه رکنه ولی با حدید باشه این رکن یا قیل روکنه؟ بعد حدیدی که در روایات اومده مراد هم این حدید معروفه یا نه هر چیزی که تیزی داشته باشه ولو برگ دفتر تیزه که بعضی از مواردم دست دادم می یا کتاب یا هر چیزی آیا حدید متن نظره یا حدید بودن متن نظره کدومشه یعنی خود تو تشخیص بدیده نهایت این نظریات برمیگرده به تشریح خودتون نسبت به موضوعات هر کام جز موضوعات محدده یا جزء موضوعاتی که محدده نیست مثلا در نشوز زن نشوز رو شما به چی میگید نشوز یعنی تبر داره گردن شوهر رو بزنه یا نه هر شما بگی با یک داره گوش میده اینا نشوزه نشوز رو عرفی معنا کنیم یا شرعی معنا بکنیم نشوزی که در کتاب نکاح اومده نشوز اون اقنا مراتبشو میگن نه اشد مراتب رو یا چیزی که عرف بگه نشوزه کاری به عرف نداره یعنی همون عفتی که در آیه تعفیف داره اون عفت نسبت به زن میشه نشوز نصوصش هم نگاه کنید همین یعنی ما چیزی بگیم با کراهت قبول کنه ولو قبول کرده چون با کراهت نشوزه حالا این موضوعات رو ما چطوری تشخیص بدیم؟ یه مقدارش با مراجعه به نصوصه بردی از مواردش هم با زوغی که شما پیدا میکنید. چون زوغ فرق میکنه. کنه ها نوعا مبتنی بر ذوق انسانه الان یک روایت رو شما بین دو نفر بین مرگومه خویی و شیستر به نظر بدن هر کدوم یه نظر میدن چون زوغ فرق هست و تمام دخیل در استنباطات هم ذوق خوبه هاست نه چیز دیگه و از نظر سنتی دلار اینو همه میدونن و همه استظهار میشه همه بحث میشه راه بحثاش هم معلوم پس این اختلاف به خاطر چیه؟ به خاطر امون برداشت هاست اختلاف داره و خیلی صورتات دیگه خیلی از صورتاتی که ما تک تک نه رو باید بتونیم نظر بدیم با یک ذهنیت، ذهنیتی موضوع باشه طور الان در مباشرت زن و مرد این چهار ماهی که متن در روایات این موضوعیت داره یا نداره چی میخواد بگیم 4 ماه یک حکم عرفی شرعی طبیعی اصلا جزء حقوق یا جز احکام شرعیه اگه جز احکام شهر بدیم داره ماه باید رعایت بشه حالا اگر حقوق باشه خصوصیت نداره. چار ماه بخوای مطارک کنی حقوق و زن پایمال میشه اینا باید ما نظر دیدیم دیگه شما چی نظر میدید؟ این تحیید زمانی رو قبول میکنید یا قبول نمیکنید؟ چی بگیم در این موارد؟ موضوع کدومه؟ و اگر موضوع معلوم میشه جز موضوعات انوانیه جز موضوعات ذاتیه تغییری درش هست تغییری درش نیست پس موضوعات احکام شریف بر دو بسمه بعضی یا داره بعضی یا نداره الان این چار ماه داره این تهدید رو بارشون موضوعیت قاید بشیم یا قاید نشیم اگه جز احکام تأفد شر بدونیم خب تهدید وارد میشه که ما علیه علمش ولی اگر جز احکام شر ندونیم این جزء حقوق باشه جزء حقوق باشه که ما حوال تهدید زمانی زمنی نداره متقیره زن بازن فهم میکنه و خیلی از مساعده وقت نباید بترسیم یعنی ترس در نحت برای بزرگترین گناه به بترسیم که دیگران اونتو نگفتن ما بعد از مبانی داریم بحث میکنیم اونا مبلاقشون چیه اینه که حکم شرعی میدونستن اگر ما اینو حکم شرعی ندانیم جز حقوق بدونیم اگر جز مباحث حقوقی بدونیم خب دیگه ما تقیید میشه دیگه اشخاص فهم میکنن از <تصفيق> دوره در گفتاره دوره در گفتاره دور واقعی نداره تهدید ابتدایاً الان نصوصش نگاه کنیم اعتبار اونچنانی هم نداره این نصوصی که تهدید زمانی درش هست در یقینا یعنی تنها محور که احکام دور دورون می‌چرخه ذوق طبیعی قیلین هم نیست یعنی اون قوه میگن همین مهور رو میگن و اون مهور میتونه موضوعات رو تشخیص بده بذار تشخیص هر شخصی برای خود چوتیت داره شما شاید بگید نه تحدید زمانی موضوعی هم داره. نه اینجا در کام شره اونا که های ای داره ولی حالا من به عنوان یه مثال بگم اینا مطلعه اینا موضوعاتش باید معلوم باشه، تحقیق داره یا تهدید نداره، وگرنه ممکنه بدون موضوع که ما نداریم. با یه روایتی باشه درش فقط حکم اومده، موضوع درش نیست. نمیشه که یعنی موضوع میاد، ولی موضوع یا تهدید میشه، یا تهدید نمیشه. منهج المجموع شما حکم ظاهری دیگران رو در حق خودتون نافذ می‌دونه، یعنی ظاهرا میگن دیگران میگن نماز ما صحیح لباس ما پاکه و امثال اینا ما شک داریم یا حتی علم تفصیلی داریم به نجاست به مانعیت به هر چی آیا اعتنا بکنیم یا اجتناب نکنیم قائل به تفصیلی تفصیل بین احکام انوانیه و احکام ذاتیه یعنی تفصیل بین ارکان و غیر ارکان اگر اختلاف چه از نظر شهادی و تقریبی در انوانیات باشه شما مضر نیست چون روایات جماعت مثلا حاکمه بر همه روایات شروط و موانع هاست بیر زرگان این اونقدر قدرت داره و قویه که بر تمام احکام انوانیه حاکم میشه تا علم دارن به نجاست لباس امام باز میشه کرد یا این داریم به عدم رعایتش در هین نماز نسبت به جلسی استراحت و سایر عموم من باز میشه اختیزا کرد کما که بعضی ها باید به این نظری ای بعضی هم نیست که بایدی نداشته باشه تفسیل قاید میشیم بین احکامی که موضوعاتش متغیر و موضوعاتش نامتغیره اگر موضوعات متغیر باشه اختلاف موعظی نیست اینو اختلاف وقتی اخت موعظی نباشه حالا قول به قبول رو مقدم کنیم یا قول به صحت رو قول به صحت مقدم میشه و به اصطلاحاً گفتیم تو السهره در مواردی که عملی مشترک بین دو نفره و متطالبه دو نفره باشه ما که می مثالش بری کو اوت عاد جمعات کهمت از اون موضوع موضوع موضوع مو این تقلیه که مووزوع مادره موز و ت که این در به شده این شده عظیمون روی خود متأخر هست و بیان در باری اینکه موضوعش واضوا به اور شده شرط تعبدیش اثر نشده شده مثلا نجاست مانعیته ببین الان من یقین دارم من اینو می خوام بگم اینطور بگم الان علم به نجاست لباس امام داری او نجاستشو میدونه آیا برام جماعت مانعیت داره یا برای نماز خودش در موارد علم خودش مانعیت داره این اول کلامه ما نمیتونیم قائل به مانعیتش هم باشیم حتی در نماز جماعت نجاستش معلومه ولی مانعیتش در حین جماعت معلوم نیست که مانع باشه بله نجس علم تفسیری داریم به نجاستش ولی مانعیت هم داره اگر کسی قائل به انتظاهیت احکام وضعیه باشه به اینکه هر نجاستی مستبتن مانعیته که اینو قبول ندارن مشهور خب میشه باقیده به بطلان بشی ولی قاعده به اعتباریت احکام وزیعه انتظار کسی قبول نکرده گیر از ظاهر شیخ وقتی احکام اعتباریه شعار نجاست به اعتبار کرده ولی مانعیت رو خب این کاله این انتظارات رو به نوم متجده که این که مولود به اعتقال اینکه که به بشه چرا این موضوع و عرف فهمی چرخه تعارضی پوش نیست عرف و که اصالت افرو سنت موضوع و معلومه اصلا نداریم که بگیم در موارد شک به عرف بشه حالا شاید من چنین ولی الان حتی علم داریم به نجاست لباسش حالا اقتضا رو کنیم اقتضا نکنیم اینو دارم بگن در این موارد آه به خاطر اینکه در این موارد ادله قوی جماعت حاکم بر ای که این داشته باشید درسا مانعیت نداره نجاست چرا ثابت به این مانعیت نداره که انوانی بودن داره احکام انوانیه ببین این احکام انوانیه در موارد اخلاف در موارد اختلاف بین دو نفر اجتهادن و بی بیتأثیر میشه و قول به صحت مقدم میشه از قوائد شهید اول گرفته تا الان در خیلی از نصوص من داشتن نگاه کردم دارن این تعبیر رو احکام دو رتبه دارن بعضی در رتبه پایینتر آسونه بعضیا نه تشدید درش هست اگر تحصیل درش باشه در موارد اختلاف میشه و ما نمیتونیم در نماز جماعت اهراز کنیم همه چیز رو یا اگه علم پیدا کردیم به اینکه امام لباسش نجسه بیان بگیم نمیشه یا از امام بپرسیم که ما جلسه استراحت داشتیم روایت کن ما روایت کن این اینا اصلا نیست در نصوص این حرفا نیست یا از قبل بشناسیم که این شخصی که ولو اعتباط نداره عملاً اتیان میکنه به اون خاطر میشهر صداگن نیاز به این حرف نیست یا در باب زب هم همینطور در باب حج هم همینطور حتما از نایب بپرسیم که شما چطور میخوای رعایت کنی، یا رو چطور میخوای بخونه یا در نماز استیجاری میخواییم به یه شخصی بدیم یا بپرسیم هم دو رو برام بخون اینها چیه؟ دلیل نداره ما از که هم بپرسیم برای چی میپرسیم؟ حالا اینجا اومد و همه خوند همه این هم اینطور بخونه. بعد میگن نه ولی از خوب نکنیم دوباره بگو دوباره ولی از درست میگم که درست چیم خب اینه درستش که هم برای غلط میگه ولی شرط نیست میخوام بگم شرطیت نداره برای چی این بپرسیم چه شرطی ها گذاشتیم مقصد اونا اول کلامه دیگه اونا اول کلام ما همونه میخوام بگیم آیا خلو نجسین مانه اثباتون بعدن بیان نمیتونیم اثباتون که هر نجسی مانعیت دار نه نجاستش کسا معلومه ولی مانیت هم داره برای نمازی ما نه اون اول کلام چون احکام اعتباری اشاره باید اعتبار میکرد افترانه نیست ذاتی نه نجاست ذاتی نیست باب تهارت و نجاست نزاتی نیستن اولش هم رفتیم نه احکام اعتباری صرفه کاشق از هیچی هم نیست یعنی تسهیل در تسهیل در باب نجاسات و تهارت هم نصوص اینو میگه هم قاعده تهارت اینو میگه و نمیتونیم تشتیب بکنیم بزار و واسی ها باطل بلاشد به صورت قاعده استیادی در آبوزن یه چیزی و این هم میگم همش شمه بحثه شما که فردا هایی نظر بدی خب با این استرابات ما چی بگیم چی بگیم نه یه مقناه میخواد مثل شخصی هم هم شده ما هر تو آب دستتونم به کی بند نیست ما یه تناب انداختیم دستتونو دستتون رو همینه یعنی میخوام یه مهوری باشه دستاویز ما باشه با اون نجات پیدا کنیم ولی استراب داره ما نجاست بسنی علم داریم ولی آیا مانعیت هم داره اگه مانعیت داره شما باید یه قاعده اثبات کنید که قابل اثباته که کل نزیسن مانع اون من صحت السلام اگه اثبات کردید درست ولی اثبات نمیشه ما چی مخونم اثبات کنید این اول بحثه لذا احکام بعض همو بعضی لا لایتغیره در احکام متغیرش که احکام اینوانیه میگیم اینها در موارد اختلاف اشتهادن او تبلیدن قول به صحیحش مقدم میشه و صحت مقدمه نه بطلان اگر بین دو متعامل یکی به صحته یکی قایده به بطلانه اون معامل محکوم به صحت معامله محکوم به صحت عبادات هم همینطور تمام چیزی که می خواستم بگید همینه حالا بله ببین در اصل عدل و امارات اینا دو تا مبنا هستیه آیا قاهل به موضوعیت اینا میشیم یا قاهل به طریقیت میشیم خب قول مشروع اگه طریقیت نیست وقتی طریقیت به طریق قول باید این حرف رو بگن طریقیت داره موضوعیت نداری طریقیت داره اگه موضوعیت داشت میگفتیم نه اینا رو نمیشین طوری قاهل به تفصیل بشین اگه بویند داره احکام من ظاهریه وقتی احکام ظاهریه و در موارد اختلافی شده من بگم قول به صحیح واقعیت داره یا قول به بطلان ما چی میدونیم ما چی میدونیم؟ مرجع من صحیح رو که گفته ته واقع یا مرجع شما که قائل به بطلانه کدومش واقعه دارم میگن ما میتونیم بگیم کدومش واقعه کدومش غیر واقع, قدومش واقع، قدومش اذا نمیشه نحقو بزنیم وقتی نمیشه در موارد اختلافی و جزء احکام باشه که احکام انوانی باشه مثل نجاست تهارت و نشوز و امسال اینها و خیلی از چیزها که معتبرات در باب افعال یا معاملات هم مثلا در زرف حتما بپرسیم شما اینو چطور زرف کردیم نه کاری نداره در بازار بپرسیم شما اینو چطور معامله میکنید چطور خرید بروش فروش میکنی؟ لازم بپرسیم بعد بخریم منش لازم از این از قایده این بود که در مواضیه خلاف میشه بین انوانی لذاتی یک حرف رو آره اون دو قول درش هست یعنی ظاهر کلماتن بعضی یا قائلا میگه اصل انوانیت بعضی یا قائلا میگه اش ما گفتم اصل انوانیت اینو قبلا گفتیم گفتم رو باز پول به صحت مقدم میشه. برای نه در مواردی که ببین این به یک عملی مشترک بین دو نفر. همین دو نفر دو برای یک نفر یک مصداق در یک نفر ذاتی دراجنبانیه. مثلا یک یکی هم که این قراردادی پیش در, در این صورت این خاصی که انوانی میدونه، میتونه متعهد عمل خودش چیزی رو حاکم بکنه، یه اون که ذاتی میدونه، چیزی برای تصفیه عمل خودش بیاره. حالا این وجود خارجی نداره این چیزی اینا. چون ذاتی به ذاتی انوانی در این موارد نیستند. ولی اگه باشه باز قول به عنوان مقدم. الان کار هم فقط قابل دیدنیه، چیزی قرار گفتیم گفتم دیگه طرف اینا کبریاث معلومه ای ثغریاتش مهمه شما ذلح با حوید رو رک میدونید یا نمیدونید رو به قبله باشه شما رک میدونی یا نمیدونید مسلمان باشه بالغ باشه مرد باشه ذکر کنه اینا رو رک میدونید یا نمیدونید تسمیه رو شما رک میدونید یا رک نمیدونید اینا رو باید دنبالش باشین و اگه مشهورم بایدن به اینکه مهم رعایتشه نه اعتقادش بعضی اعتقاد به جلش استراحت ندارن همون که بعضی از معاصرین الان این طور ولی در عمل در نماز ما رعایت میکنه صحیح مهم ندر یاسفورتونه یعنی سغریات رو هی دنبالش روشید پیدا کنید الان مثلا در این حدید حدت رو مهم میدونید یا حدید رو حتما باید آهم باشه و تیز باشه اینا خیلی مهمه این مختلابه برای بحثا از نظر کبروی معلومه صغرا خیلی مهمه